میگویند که بازگشت به کفر و شرک مهار است. یعنی چه؟ یعنی بازگشت به آزادی مهار است. با این تهمت و با این رجس‌سازی راه ما را به آزادی میبند مولوی میگوید نه بازگشت به آزادی محال نیست آزادی چیست؟ آزادی این است که انسان میتواند رابطی مستقیم با حقیقت با خدا با سیمر بگیرد مولوی نه تنها مول محال میجوید این چیزی که برای همه محال بازگشته به کفر شد، بلکه خود را محال میداند چرا محال جستن نزد عالم و آمی تا به امروز از سوی خطرناک و از سوی دیگر گناه شمرده میشود چرا عالم و آمی کسی دست به آنچه محال هست بزند چرا دست زدن به آنچه محال هست گناه هست چرا ما نمیتوانیم به آزادی برگردیم چرا ما نمیتوانیم انبازی با خدا بشویم محال جوی و محالم محال جوی و محالم به گناه مرا قبول می نکند هیچ عالم و آمی محال جوی محالم به دین گناه مرا قبول می نکند هیچ عالم و عالم و آمی چرا محال, محال جو است چرا محال هست تو هم محال ننوشی و معتقد نشوی برو برو که مرید عقول و اوهامی با این عقل اسلامی با این عقل غربی ما را بر ضد جستن محال بر ضد محال شدن کردند اگر ز خسرو جانها حلاوتی یابی محال هر دو جهان را و چومن در آشامی محالی را که مولوی در نظر دارد آن است که شریعت اسلام سایر عدیان ادیان نوری انسان را از همگوهری با خدا بریدن با بن هستی با بن کیهان دیگر انسان همگوهر نیست انسان و خدا یا به طور کلی گیتی و خدا در اسلام و سایر ادیان نوری یعنی چی؟ یعنی یهودیت، مسیحیت، اسلام، دردوشتی گیتی خدا را دو گوهر و دو جهان جدا ساخته از هم شده دانم و رابطه انسان با حقیقت که رابطه انسان با خداست رابطه غیر مستقیم ساخته شده است فقط برگزیده حق دارد با اون رابطه داشته اون هم با جبریل رو نمی دانم. روح القدس و اینها رابطه انسان به حقیقت رابطه انسان با خداست رابطه مستقیم اینها همه رابطه غیر مستقیم ساخته شده است انسان حق ندارد و نمیتواند با خدا یا با یا با سخ، به سخنی دقیقتر با بن آفریننده هستی با بن خودش بیا میزه. واجی محال همریچه با واجی تحول است اون چه تحول ناپذیر میگویند محال است میگویند انسان به خدا تحول نمیپذیرد میگویند خدا به انسان تحول نمیپذیرد ولی این را نمیگویند شیمر تحول میپذیرد به انسان تحبول میپذیرد بگیت امتدادی میابد میشود بگیت مولوی میگوید نه چنین چیزی محال نیست و میتوان آن را داد دارد و خدا و انسان میتوانند به هم تحبول بیابند اون چرا با عقل اسلامی محال میدانند من آن را محال نمیدانم و درست من چنین گونه محالاتی را میجویم و من میخواهم چنین محالات چنین محالی بشوم اندیشه مولوی در راستای پرهنگ سیمرغی ایران است نه دین زردشتی که استوار بر چی بود استوار بر همگوهری انسان و خدا بر همگوهری انسان و هستی بود خود را که تخم هست می آبشناد، خوشه است که خود را می آبشناد و از این تخم هایی که افشانده می شود گنج ها در همه وجود انسان ها و جانها ها می شود خدا می شود انسان خدا می شود جان خدا بنابر تصویر فرهنگ سی ایران خوشه بزرگ است که چی از دانه های و بعض گوناگون این خوشه هست اما نه به معنایی که در واقعیت ما یک خوشه را پیدا میکنیم یک خوشه گندم همش گندم است. نه این خدا خوشه است که هر دانه اشید دیگر است. این خیلی مهم است. خدا تحبل پیدا میکند ناگهان به کسرت همه همه کسرت ها میشود همه با هم فرق داریم همین دو تا کثرت مستاین از هستی خدا یا بن آفریننده هستی فرامی‌جوشد این خداست که گوناگون شود این خداست یا بن هستی است که تا واحد است تاریک و نادیدنی و خدا نیست اصلا ولی در پیدایش کسرت و تعدد و گوناگونی و رنگارنگی می‌گردد خدا خوشه گوهر و وجود و هستی خود را تکان میده خود را میافشاند و در هر جانی و هر انسانی یکی از این بزهای یا, یا وجود خدا میافتد اینا ببینید اینا مسئله تشبیحی و تشبیحی و خیالات و شاعرانه نیست اینها را ایرانی باعیت میدانست خدا پخش یعنی بق بق که بعدش بخت شده معنی پخش خدا یه چیز بخت بخت شد پخش داده نیست بعدش معنای غلط پیدا کرده است که این بخت این خوب است اون بخت اون بده نه خدا پخش می شود بخت و گیتی به وجود میاد. هر انسانی حامله به خداست هر انسانی آبستان آبستانه به چی؟ آبستانه به خود این را می دین بقیه این کاربرد اصطلاح دین در مفاهیمی که امروزه باب شده است اینها همه ضد مفهوم دین است اینها با دین که رابطه ندارد ضد دین هست ضد خدا هست ایرانی میگفت که در هر انسانی تخم خدا کاشته شده است و خدا و حقیقت و شادی و بزرگی و زیبایی و مه مستقیما از این تخم در که با در وجود انسان گنجیست می میروید چون این خدا اصل گوناگونی و تعدد و کسرت هست در هر انسانی خدای دیگر است به اندازه جنها و انسانها خدایان هستند ولی همه آنها از یک خوشه فرو رفتن. همه از سیمور پر و و چند همه با هم مختلف و گوناگونند ولی از یک شیره رو ایدن. این تصویر آنها از کل جهان هستی بود ببینید در این تصویر فردیت هر انسان شناخته می شود و به انسان همونقدر همان اصالت میدهد که به خدا انسان اسارت خدایی دارد این مسئله خلیفه نیست ایرانی تو این توهین بود ایرانی خلیفه باشد خلیفه خدا باشد نه ایرانی تخم خدا بود این تصویر اندیشه خالق و مخلوق را ترد میکند دور میاندازد ببینید این اینها گفتن کفر به اینها گفتن شرک یعنی چی یعنی آزادی را با این نامها از ما قصد کردند و ربودند و نعره و فریاد حقیقت میزنند هر چیزی هر انسانی بن آفرینندگی را در خودش دارد این پیایندها اندیشههایی هستند که ما امروزه نیاز به آن داریم و دست روشنفکران و روشنگران ما دست گدایی به باختر دراز کردن عقل گرایی شده است عقل گدائی عقل گرایی شده است عقل گرایی و بادی به قبقب میاندازند که عقل گرا و خرد گرا این خرد را هم آروده میکنند و ناپاک میکنند خیال میکنند خرد یک واژه فارسیست یا عربی جای واجه عربی عقل یا جا و جای واژه راسیو نه این نیست خرد معنای دیگر دارد این فارسینی ویسی کسی خرد رو جای عقل نمی عقل به جای خودش مفهومی جداگانه خرد مفهومی شده خدایان ایران به وقتی میگن خدایان ایران خدایان ایران کی هستم شمایی منم دیگری هست همه انسان ها خدایان هستن چون همه فرزندان دسی مرغان خدایان ایران چیزی جدا از جهان هستی نبودن خدا در انسان ایمانه است، هست یعنی زهشی و جهشی در عربی یعنی انبساغش اسلام و زردشتیگری پیش از اسلام این را مهار ساخته زرد بود زردشتیگری مهار ساخته بود اسلام و زرد پیش از اسلام این را محال ساخته بود و عرفان و ویژه مولوی میخواست به آنچه اسلام و عقل متداول در جهان اسلام محال هست بگوید که آه شما اینها را محال ساخته اید چنین چیزی محال نیست بخشود ما این نیست که عزیز فلسفی بگوییم به طور کلی چه چیزی به طور کلی محال هست و یا چه چیزی محال نیست این بحث ما نیست و چه چیزهایی محال ساخته شود نه در فرهنگ ایران خود کلمه هست ما می‌گوییم این چیز هست خود این کلمه هست همه این سخنهایی که گفته شد در خودش داره فقط ما رابطه خود رو با زبان خود ما از دست دادیم در کتاب لغت شما نگاه بکنید دو تا معنی داره یک معنی هسته و دانه و بر یک معنی معنای کفل و سرین و توهیگاه و زهدان یعنی چی؟ ببینید اینا بی خود نیست که دوتا معنی داره این چون که چیزی هست که تخم در تخمدان هست یعنی چیزی هست که اصل همیشگی آبستانیست چیزی هست که اصل همیشه زاینده و آفریننده هست. در واجه هست ما این افکار هست و ما بیخود دنبال آب در بیابانهای شوروزار شورزار گرانیگاه بحث سر مقاله اندیشه این است که ادیان نوری به ویژه یهودیت و مسیحیت و اسلام و زردش دیگری که در ایران دم از دیگر بودن از آنها میزند بینش مستقیم انسان را به حقیقت ما ساخته چرا؟ شما ببینید این بی بینش مستقیم حقیقت در فرهنگ ایران و در جاهای دیگر با معراج با آسمان در انسان زمیر انسان تخم سی است همیشه پرواز کند به سی یعنی رابطه همیشه این را معراج بایدش کفتند این رابطه که از کلمه عرض میاد که اسم سیمور مرخ هست انسان همیشه میتوانست در اندیشیدن زمیرش به مراج برود و باسی مرگ بیا این رو چی؟ این رو در شاهنامه چه در داستان کیکا چه در داستان جم محر ساختان جمشیدی که با خردش همیشه با آسمان رفت در عید نوروز در جشن نوروز با دیوهای تبهکار به آسمان می یعنی چی؟ یعنی خرد انسانی بی شد. خرد انسانی احریمنی و, احری و شیطانی است با این خرد و با این خاست انسانیش اهریمن جمشید تبهکار شده است. جشن روی جشن تباهیست این افخاریست که زر موبدان زردوشتی از داستانه جامشید ما از بن انسان ما ساختند این معراج در محمد داستان ها پیدا کرده که چه جور رپتاز این داستان معمولی تفکر و اندیشیدن بوده این است که در مسیحیت این ایده رد پای این ایده شرک باقی موند چطور؟ برای خاطر که میترائیز این ترینی تر تا یکتایی رو گرفت از فرهنگ به مسیحیت داد در میترائیسم سروش و رشن با میتراز با هم ستا یکتا هست این تا یکتایی به مسیحیت رفت و صد نو عبکار در هم پیچیده و موهومی پیدا کرد که الان بنیاد هم کاتولی... کاتولیسیستم هست هم بنیاد عدیان لوتری و پروتستان حالا این, این شرک بنیاد بونی شد که کود مقوی برای دموکراسی و آزادی شد که این را ما کمتر به اون توجه می کنیم. آزادی شرک هست. چرا؟ آزادی شما یک جور میاندشید من یک دور دیگر میشم دیگری یک جور همه اینها اینها بحث شرک هست بس که پلوراریزم بحث شرک هست شما با اینها را با وزک کردن این مسائل را نمیتوانید بکوشانید آزادی در اجتماعی امکان پیدایش و رشد پیدا میکند که اعتقاد به حقانیت شرک چند خدایی دارد خدا ببینید وقتی خدایان مختلف در یک نیایشگاه در پانتئون همدیگر را تحمل کردند پیروان آن اون خدایا هم دیگر رو تحمل میکنه ولی یهوه که آمد همه خدایان دیگر رو رفت بیرون محمد که آمد همه خدایان دیگر رو در کعبه همه رو نابود کرد یعنی یعنی هیچ اندیچهی غیر از این اندیشه حق ندارد وجود داشته باشه یهوه و پدر آسمانی و الله خدایی را جز خود در معبد خود نمیپذیرد. پیروی از افکار مختلف کردن تفاوت چندانی در گوهر از پرستش خدایان مختلف ندارت آزادی و دموکراسی در آتن هم رابطه تنگاتنگ با وجود خدایان در یک پانتئون داشت اینها تئوریهای پیدایشی دموکراسی در آتن این را فراموش میکنند این است که روشنفکران ما که اینا رو میخوانند متوجه نیستند که پیشورده دموکراسی در آت در آتن چی بوده است؟ تیوری و هنوز نیست به طور دقیق سرر علل پیدایش دموکراسی در تحقیقات تاریخی در رعه وردن. همانچنان که هندوستان در اثر تعدد خدایان در نیایشگاه توانستند توانستن به آسانی به دموکراسی راه یابند ولی پاکستان هنو توش گیر گردن. در معابدی این زن خدای ایران نیست یعنی شیمور پیکر همه خدایان را میگذاشتند اسفندیار که نخستین مبلغ دین زردشتی بود این خدایان را به نام بت میشکست اینها در شاهنامه آمده است که شاهنامه شاناسان ما میخوانند و آن را رد از آن میگذرند و اصلا بویی از حقیقت در آن نمیبرند برای اسلام چکنی افتخار است. برای ایرانی بود چکنی هست من خدای دیگری را از بین میبرم من دست به تفکرات دیگران میزنم تفکرات دیگران رو نابود میکنم این اسپندیار بود که در شاهنامه دقیقاً بخوانی نیایشگاه ها را با زور از بود پاک میکنه، باج میگیرد که چرا زردشتی نمیشه؟ این کارهاییست که بعدش محمد و کرد. کردم. از این رو گوهر دین زردشتی به کلی با منشور تسامح کوروش و فرهنگ حقامنشیان و اشکانیان متفاوت است. از این رو هست که کل تاریخ مربوط به حقامنشیان و اشکانیان را شما در شاهنامه نیابید اینها همه را خود این کسانی که امروز به سیوند و آبگیری سیوند میزنند اینها خودشان روزگاری فرهنگ هخامنشی و اشکانیان را به کلی از تاریخ ایران از بین بردن. عرفان و ادبیات ایران به کفر و شرک قدیم ایران بازگشتن. اینها آزادی بود ما اینا رو خیال میکنیم اشعاریست که با این حال میکنیم نه این بذر آزادی را از ترکاشتن این مطلب در فرهنگ زن خدایی ایران به گونه های گونه, گونه های مختلف بیان میشد به چیک این این میگفت که هر انسانی آبستن به خدا هست این یک خدا نبود که در همه جا یک نواخت و یک سان پیدا می شود. نه این خدایی بود که در پیدا شدن صدها هزار میلیونها خدا می شود. خدایی بود که کسط پیدا می کرد به همه گناگونه ها این خدایی نبود که یک امرو یک حکم بدن این خدای خردی بود که پخش شد این خرد پخش شد در مغز هر انسانی خرد خدایی بود این است که وجود خدایان معتعدد در معابد آنها فقط بیانگر این سرندیشه بود دوستان خوش و خرم باشید